پنجامین عادت زده تمبلی فهرست پروژه ها که از میان می رود باید اول فلان کار را انجام دهم وقتی پروژهی به خوبی تعریف نشده باشد طبیعتاً به انجام رساندن آن هم به تعویق می وقتی احساس می کنید قبل از انجام پروژهی باید کارهای دیگر مربوط بدان را هم انجام دهید آغاز آن پروژه به خودی خود به تأخیر می افتد. در حقیقت این بهانه تنها بدان معنی است که شما هنوز قدم هایی که باید برای آغاز کارتان بردارید را به درستی برای خودتان تعریف نکرده اید. راه حل هم همان داشتن تعریف واضحی از کارهایی که برای انجام هر پروژه باید انجام بگیرد است. همیشه آغاز یک پروژه جدید ترسناک است. ما اغلب از دست به کار آن شدن پرهیز می کنیم. زیرا که در این میان کاری هست که به نظر بیش از حد سخت می رسد اما وقتی همه چیز را به قدم های عملیاتی خردتر و آسانتر تبدیل کردید خواهید دید که به انجام رساندن تک تک و در نتیجه همه ی آنها چندان هم دشوار نبوده است این همان کاری است که یک فهرست پروژه برای شما انجام می دهد با داشتن فهرست پروژه تنها باید نگران برداشتن قدم بعدی باشید و نه دهمین قدمی که در فهرستتان ثبت شده است. به این ترتیب شما با کامل کردن نظامند هر قدم عملیاتی در این فهرست بر به تحویق انداختن پروژه اصلی فائق می با این شیوه لازم نیست که نگران نتیجه پروژه باشید. تنها کافی است که کار را انجام دهید. برای تمام ابعاد زندگیتان فهرست پروژهی بنویسید. به این ترتیب اگر چند کار مختلف داشته باشید به چند فهرست مختلف هم نیاز خواهید داشت. برای مثال شما می توانید برای هر یک از این پنج پروژه فهرستی تهیه کنید. 1. آغاز یک دوره ورزشی روزانه تازه. 2. ارائه فصلی در محل کارتان. 3. رمانی که همیشه دوست داشته اید بنویسید. 4. بروز کردن سوابق مالیتان پنج تعمیر سقف خانه برای هر کدام از این پروژه ها یک برگ کاغذ جداگانه تهیه کنید. کار را با مشخص کردن هدفی که مایلید بدان دست یابید و قدم عملیاتی قابل اجرایی که در راه رسیدن به آن لازم است بردارید شروع کنید. هدف نهایی شما نوشتن فهرستی از قدم عملیاتی مرتبط است که پاسخی برای سوال ساده ی کار بعدی چیست هستند؟ رمز موفقیت در این عادت تمرکز بر تک تک این قدم عملیاتی است. تعریف این قدم ها نباید و مبهم باشد و در عوض لازم است که خاصه دقیق هر قدم را در فهرستتان مشخص کنید <متصف> مثال فرض کنید پروژه شما آغاز یک دوره روتین ورزشی تازه است. این پروژه را به ترتیب زیر میتوان به های عملیاتی خردتر تبدیل کرد. 1. انواع و اقسام فعالیت های ورزشی را که از انجامشان لذت میبرید بنویسید. از پرورش اندام گرفته تا هنرهای رزمی و یوگا و دیگر ورزش های حوازی. 2. در مورد هر کدام از این ورزش‌ها تحقیق کنید تا بدانید کدام یک بیشترین سود را در دراز مدت برای شما دارند. 3. ورزشی که مایلید به برنامه روزانه‌تان اضافه کنید را انتخاب کنید. 4. گزینه‌های مختلف برای آموزش را بررسی کنید. مثلا آیا می‌خواهید در باشگاه ورزش کنید یا در منزل؟ 5. با چند باشگاه ورزشی مختلف صحبت کنید تا از جزئیات آنچه برای ارائه به شما دارند با خبر شوید. 6. برنامه باشگاهی را که بهتر با سبک زندگی شما جور در میآید را انتخاب کنید. 7. برای برنامه آموزشی فعالیت مورد نظرتان ثبت نام کنید 8. عادت روزانه برای دنبال کردن این برنامه ورزشی جدید در خود پرورش دهید اگر راستش را بخواهید حتی فهرستی که گفته شد هم بیش از حد کلیست. اگر در انجام مواردی که گفته شد هم مشکل دارید می توانید آنها را هم به قدمهای عملیاتی خردتر تر تبدیل کنید. من اولین قدم این فهرست را بدین ترتیب ریزتر و دقیق تر کردم. انواع و اقسام فعالیت های ورزشی را که از انجامشان لذت می‌برید بنویسید. 1. منافع دویدن چیست؟ 2. منافع راه رفتن چیست؟ 3. منافع یوگا چیست؟ 4. منافع ایروبیک چیست؟ 5. منافع پرورش اندام چیست؟ 6. منافع ورزش‌های رزمی چیست؟ در نهایت لازم است که این فهرست را همگام با توسعه پروژه تان بروز کنید. شما در طول انجام پروژه اطلاعات جدیدی به دست خواهید آورد که باید آنها را هم در فهرستتان بگنجانید و این کار را تا پایان یافتن پروژه انجام دهید. اجرای این عادت. فرایند ساده پرورش عادت فهرست پروژه ها از این قرار است. 1. یک. یک دفتر یادداشت بخرید. دو، یک صفحه از آن را به پروژه فعلیتان اختصاص دهید. سه، هدف اصلی این پروژه را در نظر بگیرید. چهار، قدم‌های عملیاتی که باید دنبال شوند را یادداشت کنید. پنج، هر روز حداقل یکی از موارد فهرستتان را انجام دهید. شش، فهرست را با توجه به بازخوردی که از کارهایتان میگیرید بروز کنید. شاید فکر کنید این عادت کار پرمشغله ای است که نیازی به انجام آن نیست اما تنبلی زمانی بر شما چیره می شود که مطمئن نیستید کارتان را از کجا شروع کنید و بنابراین آن را به تعویق می اندازید اما با رویکرد حاصل از این عادت شما همیشه یک قدم عملیاتی پیش روی خود دارید که باید انجامش دهید و دیگر تسلیم ترس از شکست نیز نمی شوید در عوض همیشه سر رشته را در دست خواهید داشت و حتی در صورت مواجه شدن با شکستی جزئی هم از آن درسهای ارزشمندی خواهید آموخت